حکایت آوردند که نوشیروان عادل را در شکارگاهی سید کباب کردند و نمک نبود. غلامی به روستا رفت تا نمک آرد. نوشیروان گفت نمک به قیمت به ستان تا رسمی نشود و ده خراب نگردد. گفتند از این قدر چه خلل آید؟ گفت، بنیاد ظلم در جهان اول اندکی بوده است، هر که آمد بر اون مزیدی کرد، تا به بدین قایت رسید. اگر زباغ رئیت ملک خورد سیبی، برآورند قلامان او درخت از بیخ. به پنج بیزه که سلطان ستم روا دارد، زنند لشکریانش، هزار مورد بسیر.